بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الله على الله مسئله در اونجا مفرح شد به عنوان بحث فرق از مخصص این عنوان مفرح شد و زاگی بحث این بود که آیا ما بدون فرق از مخصص میتوانیم و اصالات الاموم که جز اصول لحظی است تمثب کنیم یا نه از ما هست مخصص فرق بشه بعد از یک سازون در اصالات الاموم فرق از شد که مطالب مسئله معترضه که اساطر عموم مثل اساطر حقیقه میدین چطور ما به اساطر حیقته می کنیم بدون فحض از این حضار میتوانیم اساطر عموم تمثل کنیم بدون فحض از محضر. این حضار این حضار و هر شد که مسئله در خود کتب احل سنت موقع بررسی که قرار گرفت و قابل شدن که فصل باید باشه و چاره نیست و اصولا فخص و علامت اشتهاد گرفتن یعنی فارد بین آمی و محشهد رو این دونستن چون مثلا در اون زمان دیگه در جهان عرب در جهان اسلام عربی را ایلی بود خب اطلاعات کتاب رو مرتبط میشنن اوفو بالاقود احلالالبه میخوندن مشکه نبتایشون بخصا این انسان آمیز که به اطلاعات یا عمومات ارخز میکنه و کار مشهد فخصه بدون اونه نمیتونه نمیشه به شخص مشتهد این توضیحاتش گذشت درست که دیگه تکرار نواهر بکنیم بعد شد این مسئله از که به اصول اهل سنن منتقل شد به اصول شیعه و طبق تخصیم بندی که بنده کدارا خدمتون عرض کردن ما مواحظ اصول ما به طور کلی در بخش زهورا در طول اصول یک بحشش برمیگرده به حکر شریعی رنه منابع تشریف این یک بحثه که این بحث از فرم از زمان صحابه شروع شد یه بحث بر در بوجه و طرق و امارات و اینها که این از قرن اول اواخر قرن اول و قرن دوم شروع شد با که در و اما منکدار کردنش یعنی اصول ابتداعا از اواخر قرن دوم و بعد تدریجا بهش اضافه شد پس این جد به بخش دوم از مباحث اصوله چرا؟ چون مباحث ظهورات را هم جزو همین مباحث حجج و امارات و طرق قرار دادن حصول لحظیه در حساب عموم یا حساب پس جایگاه این بحث هم روشن شد که در حصول جزء بحث های درجه دو تیر ما یعنی جزء بحث که به حجج و امارات و حصول عملیه برمی گرده این بحثی که الان داریم این هم در عرضش این بحث در حصول و جایگاه این بحث در و, و عرض شد کرارن و مرارن غیر از اینکه که این مباحث اصولی این قسمی مثلا دیرتر مطرح شد بین مسلمان ها غیر از این این مسائل اصولی این قسمی اصولا جز به شاخصهای مذاهب اسلامی قرار نگرفت اون مباحث اصول اول شاخصه شد اصلا فرصای قیاس و جد باشی یا نباشه مصدر تشریب باشی یا این اون جز شاخصهای مرتب شد اما این حالا است بر اساس اون بذون صد مراجعه کنیم یا نکنیم این جزء شاخصه های مذهب نشد یعنی اون که بود یه مطلب رو یه فقیره امامی قبول کنه یه فقیره امامی قبول نکنه یه فقیره هنفی قبول کنه یه فقیره حنفی این جزء شاخصه های مذهب نشد به بکنید ارزش اینها این موارد این اصولی هست. در به اصطلاح ما میگیم ارزش درجه دوس کلام خب ارزش شو که من در در روز گذشته که عبارات مرمولانی رو خوندیم ایشون تنبود لا خلاف ولا اشکال که بدونه دونه نمیشه به همون مراجعه خب اینا معلوم شد از همه اولا حکم مطلب این قطعی شد که آن نمل کلام که وجهش چیه یک این یکی هم اصلا تحریر مسئله در حیرت چیه از شد که بعدها تحریر مسئله در خود کلمات آمنه عوض شد به جای بحث از سر بحث از دلیل مفرح شد و لذا اونو آمادن گفتن ما حتی الان در روایات و در ادله روایات مواردش میبارد ترسولیم و در آیات کتاب حتی اساطر حیرت هم جاری میکنه. نه یکی اساطر عموم چون از بعد در آیات کتابی در روایات تخصیص وارد شده تقیید وارد شده ما حتی دیگه به اساط چون اشکال اون آرام اصولی این بود چون ما به اساطر عموم بدون فهض از مجاز تمسک میکنیم چرا به اساطر عموم بدون فهض از مخصص مراجعه نمیکنیم؟ سوال این بود جواب ما اصلا مراجعه نمیکنیم کنیم نه به اساطر مراجع نه به مراجعه بود نه به اساطر اطلاق با وضعی که فعلا در لسان ادله شرعی پیش آمده پس و پیشایی که شده تقدم و تخیرهایی که پیدا شده ما حتی به اساط فضلا همه از سات الاطلاق و لذا روشن شد دیگه بحث بحث فهش از مخصص نشد بحث مطلق شد فهش از دلیل جهات دلیل جهات ظهور ظهور رو در اطلاق داره نظر ظهور در معنی هرگیش داره نظر ظهور در معنی شنایی داره مراد داره که یکی کسی پیش به آن آمان صحبت های درخواست تواضع کنه که ای ای چیزی که فن یعنی پیدا بشه زبان اینو بگه هیچوقت چاودارو پیدا نشه نه بود زبانش <تصفح> مرادم بود که حاجتشو بدید تا دیگه مطرح نکرده مرادم قضا حاجتش بود پولی خواست پولی روشیدی این به هم ظاهر لفظ بود که معنای کنایه داشته بشه سونیا سالش اشاره کرد اختیار کرد مراد این که چاودارو زبان آر از من گفتم که دیگه نکنه ای ماناای کنایه پس ما این مشکل رو داریم نه این که زبانش با چال میبری. دکتر فرید من ما در کل دلیل شریعه فعلا و واقعا هم همینطوره فرید باورت فرید همینه. حتی گاهی تو دلیل شریعه زیرا خطهای وجود داره که واقعا ممکن است 2600 سال تا 3500 سال نزدیک واقع مانده اون زیرا ذوانه شده. پس مراد از دلیل مراد فحص از سه یک عنوان عام شامل اسات الحقیقه میشه بحث اینه که فعلا در این شریعت مقدس بر اثر گذشت زمان و عوامل متعددی که از کردین این حالت پیدا شده که حتی ضروریات مثل اسات الحیرا هم بیان مشکوک شد و مشهد کارش اینه که اینا رو کاملا بررسی بکنه تا به یک نتیجه جامع و کلی از مختص در مخرج نیست این یک بحث عامه و درست هم هست صحبا مطلب طبیعی هم هست و طبیعت هم بنای شریعت هم این نبوده زبان رسوله امور و مواضح بوده این کارها در زبان الله نبوده خود خب این بعد بر اثر عواملی که بعد بسند رسوله رو بحثا باشه کردن پیش آمد و تا به این صورت منطقی شد پس سنابراین اصل بحث اینه علمای ما از کردیم مخصوصا در حوضه های بان. چون شیف هنسالی بحث فخص از رسول عملی رو مفرد کرد یه قیاسی به این کردن که ترکیالش بزرش یه تکرار نمی و خود مسئله رو مورد بررسی قرار دادن از که مرمون نارینی بارشو خوندی ایشون وقتی بارده بحث داریشون که لا خلاف ولا اشکال که باید فخص رو بنده مخصص و خب پس مطلب قطعی دیگه لا خلاف ولا اشکال اما تقریب که رسیدن در تقریب به اصطلاح و توجیهش به اشکالات برکرد کردن اش تقریبی که انها متعارف شد در کتب و اصولی ما که برای اونا و استاد دیگران مصرح کردن علم اجمالی است تقریبا دیگرم هست که ذکر شد و بیشترین کار روی علم اجمالی است مرحوم های خویی که از راه علم اجمالی نیمیتونی وارد بشیم به عنوان فهض چرا؟ چون علم اجمالی ما میگه ما در مجموعه ادله مثلا پنج هزار حکم واقعی داریم خب ممکن است ما الان کتاب سلاح و طهارت و حج نبا کنیم پنج پیدا بخونیم هنوز به دیهات نرفید یا پنج هزار برفید این علم اجمالی حل میشه چون بناشون به اینه که به مقدار معلوم به اجمال اگر پیدا کردیم دیگه اون علم اجمالی حل میشه از کردم این انحلال علم اجمالی بیشتر روی مبانی کسانی است که علم رو از زاویه عمل بررسی کردن خوب دقت بکنه چون ما در علم اجمالی دو مدای کلی داریم به اصطلاح ما یکی علم اجمالی رو مثل علم تحصیلی میدونه هیچ فرقی با اون نمیذونه مثل محمود عاضیاتشون از اشد ترین راه لذا اینا علم اجمالی رو دیدگاهشون به علم اجمالی دیدگاه علم اون علم میدونه مثل علم تحصیلی یه دیدگاهی اصطلاح اصطلاحا الان در کتب اصولی ما میگن علت تامه برای تنجوس اصطلاحا علت تامه مرادش اون یه دیدگاه دیگه که علم اجماع رو به دیدگاه عملی نگاه میکنه همون اصطلاحی که شنیدین میگن اقتضا مکتب اقتضا مقتضی تنجوزه یا اصطلاح دیگروش این میگن اصول عملی در عساف او تصابق میکنه این تصابق یعنی اگه شما یقین دارید که یه قطره آب در یکی از این دو خون در یکی از این دو به نواقع شده استثاب تارد در اینه که با تا در اونی که با علم شما تا آراز پیدار میکنه اصول صاحبش میشن یعنی اینها مثل خود مرمون استاد مثل مرمون ناینی اینها نظرشون اینه که علم اجمالی رو بیان از زاوی عمل نگاه بکنن برخورده ما چون از زاوی عمله من میدونستم پنجزار وقت واقعیست خب این علم اجمالی چقدر تاثیر داره من راه و من راه تا 5000 رفیق که دیوان میگذره اون بافی که به اصطلاح ما این علم اجمالی داره زقف کنه اون نمیاد از این زاویه نگاه بکنه که علم اجمالیه شما علم مثل علم تفصیلی اون یاد از این زاویه نگاه میکنه علم اجمالی شما راه میندازه نمی بچین اصول تاریخی رو جایی بکنی بشین بگین آقا اساس تاریخ این یکی با اساس تاریخ چی شما راه بیفتی. این راه افتادن روی این مبنا تا چه حدیه؟ این راه افتادن روی این مبنا تا است که اون علم شما رو نگاه میکنه علم شما 5000 تو 5000 توی تا این تا این اشکالیست که مهمال خویی به این علم اجمالی دارن البته عباراتی ایشان چون سلپه هستم نزدن خیلی قرقاتیه این حاصل اشکال من ازگردم باید منطقه مراجعه کنم. چون عبارت خیلی واضحه واضحه نیست که مثلا این اشکال رو مرموم های در زمین مثل چهار صفح گفتن و عبارت ناینی رو کندم اشون در زمین صفحه یک صفحه گفتن اشکال رو باز در زمین صفحه شو جاش رو عرض می دارد، زارد، زارد. دارد زارد. چیز قابلی... خب حدودی داره دیگه به نفرش بران افکام میگیده هست حدود زارد زارد زارد زارد. خب، اگر نمیدونید بحث دیگه خب اگر نمیدونید یعنی اینقدر زیاد بشه که شبه کسی در کسی بشه که اصلا از حد چی ممکنه تنجید علمشان رو خراب کنه 5 خب ما مثلا وستیم فکر رو که مثلا ,000 ,000 بوده این فکر در صفحه جلد 5 در این چاپ صفحه این بله یه اشکال آخر و انمال مختصیه لوجود پس به اوکرانه ها اجمالی این رو مثلا عنوان میزدن یک میزدن خیلی واضح تر بود و به طبیه از الهال انهو انمایخته دی وجوب مادم لم یهن هم فی ادن علم و اجمالی به زفر بالمقدار المعلوم بردیم اگه اگه یادتون باشه؟ اشکالو مردان وقتی هم گردیم ثوابش مقدار المعلوم المقدار مقدار باید بدون علف باشه. به مقدار المعلوم اجمال توضیحش از کردم. لم یکن مختزن به وجوب الفرس بعد از او این راهید که مرموم استاد انحلال علم اجمالی پیش گرفت یا روش مردم حکمی مقدار حکمیز مردم یا روش توضیح شده بود تکرات این بخاطر بلیسی این راه دیگه دیگه. که دیگیم ارز شد که مرموم نایینه هم جوابی داده که این علم اجمالی در حقیقت دو محور داره یکی اینکه ما میدونیم مقداری از احکام داریم که مثلا در همین کتب اربعه هست یکم در علم دیگه یا به اصطلاح ایشان دو تا علم اجمالی داریم یک معلوم به دلیل ما علامت داره یکیش نداره ما اگر بحث در ادله که پیدا کردیم اون علامت داره واضح میشه به علامت میمونه این خلاصه ایشون مرونمایی چون توضیح نوشت یه تکا خلاصه جواب مخدوم استاد درست یکیش علامت داره یکیش نداره اما دو یکی دیگه سنجیز جداگار نداره چون که شما می‌بینید یکی از این ظرف ها نجسه، این یک همچین چیزیه. می‌دونی ظرف زیت که در میان میانه این‌هاستون هم نجسه. ما هم اونایی می‌خواد اینجا از این قضیه شما اگه گشتین ظرف زیت رو پیدا کردین اون علم اجمالی اولتون میمونه شما با علامتی رو پیدا کردیم ظرف زیت این با علامت. یه ادم داشتین که یک, داشت یک نجس هست اون می‌مونه. اشاره‌ای کنید می یه خیلی مطلب در دو که 2 محره باشند حقم واقع خوبی خوب انسا که دو محبه. اگر بدونید شما یک زر زردایی توی هست و باز دروسی که زر زردی نجیزه خب نگاه مت اگر دو تا یکی باشن همون زر زردی مال زیده؟ اگر شما یک زر بزاری که نجیید خب منحل میشه علم به این فر منحله هر دو منحل میشه. بله اگر شما یک زر زرد پیدا کنی هنوز اون علم دوم خودش رو تو اونجا عنوانش عنوان زلزله ای اما به عکسش اگه شما زلزله ای پیدا کنی این مجموعه اول حل میشه یعنی اشکال مردم و استاد این که این دو اندازن اینجوری نیست که هر کدام جداگانه برای خودشون یه تأثیری بکنن پس در حقیقت من این توضیح رو چند روز رو گفتم به قول شبیه اول روزی و مشخشب در گفتید این درست اصول ما جواب پی برایش این مردم ناینی میگه حل نمیشه الگوریتم حل میشه دو علامت با غیر علامت یکی اون میگه دو تا علمی دیگه زیگرسور که هر کسی گوز ادعا که اینکه میشه کار رو انجام داد این دنبال ضابطش هم باید کار رو بعد هست آخر بحث چون یک نکته دیگه بعد مرحوم استاد در آخر کلام پس مرحوم استاد میگه نه هم هرچی اشغال با حال خودش واقیح جواب ند کافی نیست این بحث مرحوم استاد خیلی طولانی انجام داده من به اون طولانی صحبت نکردم آن تو بکنم چون خیلی طولانیه دیگه تا صفحه 266 تو این مقدار رو بحث از همون صفحه که هستم 255-266 در بایلیفون با ناینی سر اینه که آیا دو تا یکی زو علامت یکی بگنه علامت و این دو تا منحل میشن به یکیش آ این ناینی نمیشه باید هر داره احراز رو که مرمون استاد میشه چون مندک نیست اصلا هم هم با استاد این در حضر زاره یک معنی دیگه. یک معنی دیگه هم هم با نایی نیست ورد شدیش از این که یک وجه دیگری از مرگوم ناینی. سمه از شیخ الگستاد رحیمالله بیان وجه آخر لوجوب الفهر یه وجه دیگری هم از استاد به از بیان ده این وجه ششومی وجه دیگری رو که ایش رو نروی از مرگوم ناینی به این تفصیل در اون تغییرات ناین نه نا نیامده من الان تقریب به مضمون رو می خونم و توضیحش بده و نکات دیگه داره خودش رو به خاطر صح نمیذاره باقاعده این بحث ما نیست چون نکات جزرافتایی داره من بخاطر اون جزرافت‌هاشون تعریف می کنم این نیامده با من توضیح قراران حذف کردم جایی این تقریباتی که مضمون اقتصاد در صلوح سباع اقتصاد ما با اون مطبوع در فواید فرق حتا اجر تقراتیشان باید با فباید تقفیم سرشم که کرد مرموم آیه کازمی حضرت سالله سرشمی شاگرد دوره مثلا درست ناینی دوره اوائه و مرموم استاد شاگرده دوره اخیر ناینی احتمالاً احتمالا یک مقبار برگرده به خود ناینی یعنی اشکال سر مقررها نباشه آقارد برمگرده به استاد احتمالاً ناینی در دوره آخر خودش مطالب رو مثلا جرودی تقریف کرد ولاکنی از چندین ملاحظه علمی سمع کردم از مرحوم آقای گنجوردی ایشون ایشان دوره مثلا همون مثلا واقع خویی و دورهای قبل بودن پیشو ناینی و کاملا مسلط به مبانی مرحوم ناینی من از آقای گنجوردی شنیدم که ایشون می‌فرموج که حتی بعد از چاپ 450 تقریبا نظر و افکار ناینی بیشتر روی فوائد اصوله حالا درست این دو تا با هم فرق شب معد مؤسس این در درس ای چیزی فرمودن مثلا چون در سابق رس نبود که در دوره دوم دو اینی دوره اول شاید سوم ما خود بنده درس مرحوم کویی که می‌گیم اصولش دوره هفتم ایشون ما خدمتشون می‌رسیدیم یعنی درس اون بود نه حضرت ایشون تعریف هر حال مطالبی که ایشون در درس می‌شدن به عینه محاضرات برای محاضرات به عینه یعنی مثال همیشه در درس آوردن که در شنیدم مثال یک کلمه با اون نوشته موهاظرا واقعا از اونجوری چرا مثلا نوشته نداره عین هم بدون یک کلمه طبیعی خب این نبود ثابت و بعدا معلوم شد نظر ایشان اینه که وقتی چون فهم ضعف بشه بعدم پر کردن که دوره هستم رو دیدن های جوان مثلا خیلی مالی نیستن بس کردن. با کلمه خود مردم اما این در تاغر نبود یعنی مرحوم نایینی احتمالا در اون دوره اخیر مطالبی رو اضافه تقریباتی از این جهت کلمات و استاد راهی با کازمی از کردم. استاد و مرحوم های کاظمی فهم می‌کنه. با از عکا به لحاظ عربی استاد مرحوم الگوژادی میفهمه اعتماد با همون مواص و فواید ایشون بیش از همه اعتماد رو تقابلشون رو تواضع و سلوکه مرحوم های کاظمی تعریف کرده. در هر حال اینو در این صفحه 266 یک تغییر دیگری از مأثور نایمی نقل می‌کند و اون تغییر رو در تواید آمده و نه به تفصیلی که استاد نه کرده من در این دو عامل مقارنه بکنم چون تغییر اینجا انصافا تغییر محاضرات روشنتر و جامع‌تر و به نتیجه بهتر رسیده شده. من تغییر محاضرات رو می‌خونم اشاره هم به مرادف او و مساوی او در کتاب فوائد سومن شیخنا استاد بیان وجهان آخر ده وجود و, و حاصل بود. ایشون چند مطلب داشت که من عبارات عربیش رو چون خیلی از این مبانی رو ما توضیح دادیم توضیح دادیم که یک انه حجیت اساس عموم، بحثی است که من کلاراً مطرح کردم که اصولی دقت رو که این اصولی ها به این معنا که این بحث حجیت اساس العموم یا اساسی جهود این مباحث در قرن اول یعنی از سالهای شست و هفتار که در فقه اسلامی شروع شد تا حدود دی بیست، و ده و بیست و سی که آمده بود در کلمات فقه ها اترش ظاهر بود اما بحث جدازانش اصولی شد بحث راجع به اصلاح ظهور از همون اول در حقیقت در دو محور بود یکی سغرایات یکی کورا همیشه در اصول شیعه و بحثی که الان امروز می در مقایست کبرویش در دنیای علمان هرمونتیگ اما مطرحه یکی یعنی یکی بایین واقعا متلع بشن و اصلا خود اون لفظ اصلی که در قضایی ها به کار هرمونتیسا روست لفظی یونانیش قول شاره کلمه هرمونتیسا که در از در کتاب هر اکسو بود بعضها توسط مثلا شیخ تا اگه شفای منطقه نگاه رو این شفای رو رو رو رو رو رو رو رو ما الان گیم اساس زهور در منطق فصیلی شد به قول یا قضیه مثلا بعد این بحث اساس زهور در دو محور اساسی آلم و های ما بحث کردن و خیلی هم واقعا تأثیر دارن یکی بحث صغربی مثلا آیه سیغه افراد زهور در وجود داره یا لا تفقه ظهور زهور در حرومت داره این بحث صغربی که ما الان توی این جلد قول این جلده اول اصول بحث رو بیشتر ر یه بحث کبری هم داره که اصلا چرا ظهور حجت این بحث کبریه این رو ما اساسا الان در اصول ما مرحوم شیخ انصاریشون اول بحث زن آورده غالبا اونجا بیاره. من در تقسیم بندی و اصول اگر فکر کنم چند تا از اون یکی اول بحثی باشن الان ببینم در اونجا متعرض شدیم که ما معتقدیم بحث اصولش رو به بکنیم این اینها مرتب خوش سر هم باشن یه بحث کبری داره یه وقت سغربی برود وقتهای سغربی شد فهم نمی در حیات هست مثل افراد یا حیات به اطلاح ناقصه هست حیات افرادی هست مثل حیات مشتخ حیات ناقصه هست مثل توسیف ببینید ما مثلا در حیات ناقصه وقف و موصف رو تو مفهوم بحث کردیم در حیات افرادی مشتخ رو تو مشتخ در ظهورات اینا دقیقاً یه رشته متاسفانه در که آقای اصول ما آمده پراکنده شده جا بزار شده اون رشش اینه یک کبرای اصفات و زهور دو صغرایات اصفات و زهور اعتقاد خودش اصلا این اصلا این که بعد از این موارد موارث اون رو بهتر و روشنتر عرضه بکنیم اینا یک جا جمع بشن تو متفرق باشه. ده باشه یکیش یک جا بیا یکیش یک جا بیا. ما معنای هر سو اصول بررسی میکنیم. مقتضاتتون مقدم... در همین کفاله که بالای نظر دارید تا مقدمه داره که یک مقدمه ای 8 تا مقصد و یک خاتمه. مثلا خاتمه ای که ایشون داره تقلید خب ایده اشتراط هر تو خود بحثه سو اونم از این که بحثه تقلید. با تو مقدمه ایشان معنا حرفی رو فرضتون توی امر سوم مقدمه سوم چهارم آورده معنای دوم که زاره دوم و مشترق رو توی امر 13 ام در مقدمه 13 تا امر داره در امر 13 امش خب در بحث عوامل رو تو مقصد اول آورده نوایل تو مقصد دوم آورده دقت می‌کنید در حقیقت که خوب دقت بکنیم اینها صرف مشترق مبحث صغروی حیات افرادیه مبحث و تو مفهوم وصف آورده ما در حقیقت تو مفهوم وضع کار اساسی ما در اصول این بود تحلیل رو ببین که این هیئت ترکیبی ناقص اضافه چی می‌کنه؟ خوب نگاه بکن. ظهور داشوره. رجل و عالم حالا مثلا به تقریبا دیر گذشته میخوام دیگه تکرار بکنم. رجلون و عالم هم نفی و اثبات داره یا فقط اثبات داره؟ مرد دانا ما در لغت با گفتن مرد دانا نفی و اثبات داریم یعنی دانا مرد دانا باشه دا... غیر دانا نباشه قید میشه نفیانداریه باید اثباظ داره مرد دانا باید اثباظ دانایی میکنه به تو بره. من معتقدم اگر اینها رو منسجم پشت سرهم آوردیم خیلی روشندتر بود هم بحث کبردیش و بعد هم صغرایات پشت سرهم نه ما من معتقدم اجازه بفرمایید من معتقدم اصول رو باید به اقواب اصلی تخصیم میکردیم مثلا یک باب اصلی منابع تشریف تو بحث خوبه فرآن، سنت، قیاس، اجمار، مساله مرسله، رسفتسان اینجای خودش یه بحث یه بحث اصول راجع به هجر و امارات بود یه بحث اصول راجع به اصول عملیه بود حتی به نظر من یه در قوات فقریه چیم فرمان آی وحیر قوات فقریه میستند بحثیت اینا خب این بال نیاز اصولی بود آ آن گفته ما به قوواده جقی تو اصول نیاز نداریم. اما تو عملا گیر کردن اووردن باعدیت اووردم فرا آوردن با تجا ورد کجا اووردن توی ض استتصااق که معلوم میشه تاار بین ت ها با آ فرا بود روز آخور خب د انصت مثل آدم ها رو از وقتیتصای محیتی داره توواده میگیره تو وسوم قرار میدادیم اینقدر نیاز با اون جایی که از عجیبه در باشه پیدا نکنی. و یک بخشی کار میکنیم قواعدش رو یه بخشی بیشتر قواعد دبیری که اصول خاصی در تربیت ما داره امی یک بخش اصول عملی ما هم, هم یک بخش دکتر هدج و امارات ما هم هم هم یک بخش زهورات ما یک بخش این یه مشکل داشتم مشکلش این بود که ایل همیشه بود در یه خیکه جوابه ده بودش الواحد لازم است لازم الواحد پس بود داره موضوع وابد باشه بس و بود که تناسبیه وابد از یه هم اما من متأسفم خودی گروه هزینه تو ایل نمیخوایم یه نمیخوایم به هر حال اگر ما اومدیم علوم اعتباری جدا کردیم از علوم حقیقی اون رو گفتن که علوم حقیقی مثل ت اونم درست باجه نه درست بره. اما تو علوم اعتباری چه داره که پنج فصلی جداگانه باشه شش ما در ادوق اعتباری خلافند مشهور خلافند خود درست و سابر کفایه، در حساب و کتابی قابل در علوم اعتباری صباغ اقرازی در علوم حقیقی موضوعات آره من از این من از این شیلنده در رو چند چاپ این بحث رو من گفتم آذی از من گرفت، در مقابل دیده بعد کرد. بین علوم اعتباری و علوم این فصل مشکل درست میکنه؟ نه آسمان بزنیم دنده، مشکل نه خانواده آذی داریم. ما بیایم بگیم اول اصول چه علوم اعتباری این داره پنج فصل جداگانه است. بخش جداگانه، یک منابع دو بحث ظهورات، سه بحث حجج و امارات، چهار بحث اصول عملی، پنج بحث قوازی قواعدی که چون شده روی برمیذاره. پنج تا بحثی که همه موضوعا هم و محمولا با هم مختلفن. این اصرار که ما باید حتما پنج بحثی که درس می‌گیم موضوعات، ایندا موضوع کل و مبادیات، قاعده و معمورات و مسائل اتحاد الکلی موجود. اصل اختلاف این بحثه. نه آرینو پنج تا مثلا پنج عنوانه موضوعا و محمولا با هم مختلفا موضوعا و محمولا شما یک جامعه موضوعی بین اینها نمیتونی پیدا بکنید پیدا نمیتونی که مشکل خاصی ایجاد دیگه بکنید ها قرص اگر بنا جامعه ای پیدا بکنید به عنوان قرص هر چیزی که به شما میرو میده در کل مسائل فقه در استنباط مسائل فقه قدرت ایجاد میکنه برای توانایی قوائد الممهده لستنب بیر اون رو جوننا قرار بدیم نه هم همینطور این اشکال که مثلا نه به دو قسم میشه بحث درباره کلمات یا کلام اینا خب میشه پنج روز دو تا جوی خود داره ما هیچ آیه روایتی حکم عقلی و عقلایی نداری که حتما باز موضوعات مسائل دارای یک جامعه ای و به سایه سرد موضوعات مسائل اتحاد کلی و جزئیاته اینکه سوالی هست نقطه خاصی این میذنم که علوم همون گزینه اول علوم، فرصه بدن انسان درسته اون رو بزنین جامعه این تو علوم حقیقیه اما تو علوم اعتباری ما قائل بشیم به تعداد چون این بحث من شاید مثلا شاید سال قبل اول اصول مطرح کردیم و بحث موندیه باید من تکرار کنم بعضی بحثه خب ما بیایم اینجوری یک طرح از اصول بدیم ihtiyajیه به این حرفای این راههایی که اینا رفتن یکیش یک جو یکیش یک جو یک نه اینا رو که چه پس ما بیه مباحث ظهورات رو جمع بکنه. الان در وقت دقفت بکنید این بحثای کازیگه هم ما متعرسون. دیگه از های مهم در ظهورات کبرای حجیت ظهوره. در اینجا مرحوم نایده می اگر ما قائل باشیم که اساس الامون لکش فاهم ام مراد متکلم خیلی واقع. ارس کردیم. یکی از وجوهی که خیلی معروفه اساس ظهور از این جهاز بود جید داره که شغ پس اگر ما مراد متکلمو کشف نکردیم یه ظهور نداره کلام. سرش کشف مراد بکنیم. اگر کلام ممکن شد به وجه قرائن که ما نتوانیم مراد متکلمو کشف بکنیم، ظهور معرض نمیشه. فظور مییوزه. روشن این نکته اول. خب من بحثو همین چند پیش از از آزیان خوندید از مرحوم اشکال اشکارم کرد مروم آزیات به اینکه کجیت اساس ظهور از این باب پیشمانی البته مرحوم آقای کوی هم این مطلب رو ارجینام کردید ایشون گفت بله کشف مراد متکلم کشف نوعی است نه شخصی است نه مراد متکلم کشف نوعی رأی سوان عرفی این که نه این تفییم و تفهیم در معیار و مثلا کشف اصلا ما کاری به کشفیت نداریم اصلا ما تو ظهورا کاری به کاشفیت نداریم وقتی که بقول مرحوم یعنی میتونه واسه وقتی مولا زردرشت برو یا پدر بزرگ برو آب بیا ما همه میفهمیم برو آب بیا آدم اینجا اشتباه کرد، اینجا مرادش آب نبوده، مرادش آب بوده مثلا مثالی کردن عرض کردن. گفتن زبانی آقا رو مرادش چیز دیگه بوده، مرادش کتاب علمی بوده، آب یعنی نظر به مازن کتاب عصا. خب این احتمالات هست. اصلا ما دنبال این احتمالات نیستیم. نه اینکه دنبال کشف و مرادمون ما این معنا رو شبیه مبنای خویش، اصلا دنبال کشف نیستیم، حتی کش و این دنیا بحث ترمودینامیک بود، چه تمام دعوا سری و شما الان اگه مفرد در اصول کار بکنی این غیر از این که در اسلام این داره تأثیره در کل دنیای علم وقت این داره تأثیره در لغت ما اصلا دنبال این نیستیم که بگیم مراد مسکلدم 80 درصد اینه 20 درصد شکه ما دنبال میثاق اغلای هستیم کشف زنده مراد نوعی هم نمی کنیم نه دنبال کاشفیت مراد نوعی هستیم در دنبال کاشی شخصی کردیم ما دنبال میتوانواداریستیم آب در از... اونجا شکل اونجا شک نمیاد آب نه یعنی آب آب بیارم بیار شک نداری چرا شما همیشه با شک میان گرفت میاد از ماشین ها میتوانند که حضورات کت آورن شک آورن زن اصلا بیخودی تو بروستی زن آوردن آب بیاری آب بیار میگیش شما خود اون را تدبیر و تلران احتمالی <تصحیح> وقتی شو چوا آورد روز چه اینکه حتماً یقینمون مشوّل می‌کنه خودمون مثلا نعمت الهی رو میگیریم در مداهمشین آه حالا این آقا محمد بگه آه بیادن وسایل بیا وسایل مثلا حیات علمی ما خود احتمال داره اما این یک غیر متعارف این بود ببینم ما یه حساب و این حساب و اخلاقی این آور شک آور زن آور نیست زهورال از یقین یعنی عرفی این یه مینو آرتیا میارش نیصاب آوگلاریز. یه الان پدر پسر کسال مردند زندگی زندگیمو با باهام. چیکی کسی نمیاد بشه. یا این احتمال ده داره اونجا بگه پنجاه داره تو اونجا بیبیش. هی احتمالات ماشینو بگم. چیزی به اون برشگیری میشه شد. پس مرحوم نایمی. این بحث من باید تکرار میکنم چون اینکه از اساس کار اصلا. اساس کارهای ما ایشون میگه چون برای مراد وحبه متقبل ما از طرف دیگه این اساسرانون متقبل به جریان مقدمات حکمت در مخصول عام حتی اگر گفت اکم کل عالمه کل روانه کله اما عالم شامل مثلا پیتور بشه شامل نحوی بشه شامل تبدی بشه شامل فیزیکلان بشه شامل شیبیدان بشه منجم بشه ما باید مقدمات حکمت تو عالم جاری بکنیم کل به نفسه کافی نیست این هم بحثش ما مفصل مثلا کردیم. ت و از کل این بح هم که آین الان مثلا ما ای آم این ساکف های منا داره ساک های عملای ممندار داره یا هم بهطر کاپنی نیست خودقط مت ها تو مشغول هم بیا بشه. و که این رومن در همون محل ثپاس توجح دادن از قدیم ۱۳ سال تا دو۰ سا تو اصول اسلام مطرح شده که این قبی رو نکردن این مطلب رو هست اینکه تازه شده. مباحثی که برمیگرده به زور ها و کبرن این از همون در ن اول مطره. لکن گالیوقات نتیجه فکرش مدارته. گالی مقاات نه بعدها ق دوم بعد خودش مطرح شده خوب اصول تشریر اصول بده روشن شد بله. دارن ال نهاعذاثر عممون نواوعذ ذلات علاق عممون مایرات و من مکوله ها. این یک پس یک ما با از ساحل اون جاییقال کش و مرادمون مونده کرده. کش و مراز مت کرده اما که از مقدمات. در مدخول او جایوش از ناهی دیگر این یک طرف طرز دیگه ما وقتی به ادله مراجعه میکنه بعد مراجعه به ان طریقه شارح ادله ثقر است و بیان مقاصدی این الفاظ صادرات آن بلا قرائن متصله حتی اگر کنیم هارمون بیاین قرانه متصل 100 سال 150 سال بعد از زمانه پیدا برداشتیم همین بحث این از خزالت شیعه ها چون اهل سنت تمام عدله رو به همون زمان رسول الله منتہی میدونن این که قرائن منفصله بعد از صد تا بعد از 50 سال یا در مثلا در توقیع امام زمان آمده بعد از 200 تا خورده سال این رو جزء خصائص ما اشتباه نشه این در اصول ما قرار بله و پس این نتیجه چی میشه لا يكون للعمومات الوارد في الكتاب ظهور تصديقي این ظهور تصدیقی نداره کاش اون المراد قبل الفصح و مخصصات و ولی زار ایشون که طبق این مطلب ما با این مقدمات نمیتونیم به اصطلاح به خاطر علم اجمالی چون باید مقدمات حکمت رو توی مدخول جاری بکنه اون نمیشه و قواعد منفصله گیر میکن من از طبیعی ان حول علم او جهحتاسساس مقدات وطلا یا اوقل جریان ها فیلم مثل حدل عنوان این فندتی جمع عدم جواز توسط به او قبل الف ان ماهول اجله هااد نقطته این نکته که بهذهن ایشانال است آی خوبی قبلس الله نفسه دو تا اشکال دیشون کرده همون که نقد ما بر این وجهه ایشان بهداری هست یک یکی که ما در مقدمات حکمت نیاز به مدخول نداریم توزیش هم من هم کردم کردن گذشت یعنی اصولا لفظ کل کو دقتو کنیم؟ لفظ کل هنرش این نیست مصادیق یک عنوان. مثلا چنگ با عالم کل عام شما آز عاال فقا... یعنی عاک کل فقی یک عنوان اما اینکه آیا مراد از عالم شامل فیزیکدان و شیمیدان و ف نحوی و سرفی نام این دیگه کار کل نیست ما از کردیم این نکته غیر از تبادر و عرفی نداره نه اینجا آقیه داشته باشه داشت این تبادر و عرفیست انصافا در تبادر و عرفی کل کار دوگرون انجام میده یه کار نمیکنه وقتی گفت کل آلمه یعنی کل فرد از کل افرادی که ما عالم بسته میکنه لذا با گفتن کل آلم انصاف عرفی ما اینه نیاز دومقدمات حکمه در, در مخور نداریم هم کل عالم کافیه وقتی گفت اکرم کل آلم این دو تا هنر داره یعنی کل افراد کل من صدق علیه آلم سال که پاید یک هنر کل افراد یک آلم مثلا نحمی ماستم فقی مگر مقدمات حکمت جاری بشه بدون مقدمات حکمت به تنهایی کافی نیست خب من صدق علیه آلم مگر مقدمات حکمت نه, نه اون کل خودش این کاری میکنه اصلا این کل رو نبرای همینجر اون بخص کل رو برای همین جهت میاره یعنی کل رو مخواد بگه هر کسی که مثلا و... آن و... هر کسی که عالم برای سرق میکنه برای تمام افرادی دیگه نمیخواد مقدمات یک من کل عالم ال و ما این بحث کار ال العلماء اصیار به عموم عموم این کار کار بکنه لذا بعضی جامعه گفتن ال علوم عمومی نیست اما کل عالم داریم شمول افاضی داریم شمول احوالی داریم در کل کل شمول احوالی را میگه. نه مقصود شمول و مراد نیست احتباریه شمول عمرانی خب حالا این بحث اول چون ما در اینجا بار خود ما خودمون فهمیدیم بحث دیگه تکرار نیست ما با داشتن کل نیاز به اجرا مقدمات حکمت در مصول نداریم این یک بحث از این بحث اشکال اول درست من فکر می‌کنم حالا تا مراجع مراجعه نجامم، باز مراجعه، اگه مراجعه فردا به من بگه، حالا کتاب منینه جرو نه، مرا فکر شما مرجوم دانی با سابقه مخالف بود، فکر بر این علامات، تو بحث کل مخالف مخالف تو من الان این هاجینی من بعد حساب این چه فرامیشه؟ غرض به نظر من مرجومای خوئی موافقه با استادش نه، حالا چرا اینجا آدانینی مطلب فرمودن خیلی واده نیست، روشن نیست انصافا. پس ثانی مطلب دوم شکل دوم صوف مانرکو و ان شاء الله تعالی که در بحث مطلق مقید مقدمات فقه نه نماز تجلی به اثبات ضرر مطلق در حساب ادا ف... نماز تجلی به ادای صدر کلام و مطلق المتعلم فی مجلسه مثلا زمان رسول الله و لم یستر منها قرینات الخلاف جرب مقدمات رو خود مقدمات ما جاری میشه همین کلام مطلق بیا ردها یسوت و ضرور اصول وله این به این مسیرت متکلم قد جلد علا ابراز مرازاتی یا مقاصدی به قرآن منقصر ممکن بعد از هر سال بیان بکنه ولی تبناه او علا ابرازی فی مجلسی واحد این ایرم لایی هم نعمن انجلیان مقدماته لکنی فی کلامه ای دالمین سبقری نظر متصل ارخلاف بله این در این یعنی همین که مطلق اول خودش فهموزه میشه چرا؟ و سبب و فی من این مطلب رو چند بار نقل کردم بنای علمای ما این است که مخصص متصل با مخصص منفصل فرق میکنه. مخصص متصل مانع ظهوره مخصص منفصل مانع حجیت یعنی وقتی که آمد گفت عقلم العلماء الا این ای تا متصل شد ظهور مرغلط نمی‌شه اما اگر وقتی که بعد از ذوز گهلات تو کسا العلماء مخصص منفصل ظهور مانعقل میشه برای آن حجیت رو برمیداره لذا ایشون میفرماییم که اگر خیرم برای مطلح و بغیرین نحسیده کرد برای میدینیم مراد جدیش بعد سر 50 سال زمان مانع مانع شاده یا مطلح یا, یا بعد سال میاد اما این مانع ظهور نیست مانع حجیت و سبب و فید ترقلیمت منفصل لاتم نعن انعواد ظهور المطلح خلی اطلاح. و انما يثبت ان حجيت ظهور في پس ظهور با اطلاع منعقد میشه مقدمات حکمت کافیه من عرضم تو این بحث نکات فنی این نکته خیلی فنی این شو خیلی فنی فنیه من ها مو قراردادشام جهت بحث ما اینه و محفوظ ان جریان مقدمات الحکمه نه محل اثبات ظهور مصلاح صنای الخنول علم المذکور یعنی علم ما که پیغمبران موارد شارع متأخر خواهد ما نه منتی نیست بفرمایید ایشون میخواد بفرمایه که مقدمات اینشن مورد از مقدمات اینشن همینه که کلام مطلقی از شارع متکلم صادر بشه درینی توش نباشه همین که این کلام مطلق صادر شد مقدمات. این آب بیا آب بیا مطلق من امیدو این آقا قاضیش این ممکن است در ده حوزه مراد جدی من این بود همین که آب بیا مطلق ظهور میشه بعد ماده یکی مجاری میشه یعنی آب سرد باشه یا گرم باشی، آب روده باشه یا آب چاه باشه آب نهر باشه یا آب بار و باقول معروف انواع آب رو که شما سوار بکنیم برای جاده این مراد از اطلاق در کلام اینه این تعالی من توضیح میدم چون این خیلی بحث اساسیه یعنی به وقتمون داره تمام میشه من یک لحظه من از خبر ما در حقیقت چند جور اطلاق داریم احمد عسد با اینکه مقام در اصول داره از بزرگان این پنن. ظاهرا اینجا اشتباه شد ما یه اصلاح داریم معنای ازبان قرینه فقط این شعرش فقط علامات این یه چیز دیگه نمیخواد این هم چه در کلمات اهل سنت چه شیعه چه فقها چه اصولی ازش تعبیر به اسلام میشه یه کلام دیگه داریم که اسلام معنای عدم الهی تنها نیست یه امر اثباتی دیگه باید بهش اضافه بشه که اون امر اثباتی قرانه سیاقیت یعنی باز ثابت بشه ماسک کردن در مقام بیان جمیع خصوص مدارج به مجادله قاعد نمی‌تونه وصول به اون هم اصلاح میشه پس شما که اون نه هیچ اداره میدونن میدونن مستده. همون نه اون... ایشون فقط میگه همه ادب و قینامت کافیه میگه میشه مقام اسلام مقدمات ذکر نم تمامه اجازه بفر حالا به هر حال ایشون چه فرق گذاشت میشه نرموده واشن بعد دقیق بگم رم... من براتون یه تسمه دو جور اطلاق درم. من یه مثال بزنم. که این بحثا ما سالو شدم اونم دست داشتم. حالا یا نه ببینید در حساب کفای آمد مرحوم آخویم دارم بحثم مطرح کردم اطلاق السیره یختز تایمیه و نفسیه. می‌دونن دیگه. یا یعنی نه اگر گفت آب ابیان این اطلاقش اختصار میکنه که این واجب تایمیه. من شک میکنم گفت مثلا آیا یا غیر از آب دوغ هم کافی یا نه؟ خب آب بیاد احتمال تاخیر میره. آب یا دو میگن آقا همین که اطلاع برد مرادش اطلاع نگه یا دوغ همین که گفت آب بیا یا دوغ را گفت خودش برای که واجب تنید همین گفت آب بیا مرادش این که خیل نیابرد یعنی یا دوغ اضافه نکن این میشه واجب تنید دو شک میکنیم که این واجب نفسی یا غیری آب بیار برای خدا آب میخواست، یا اونجا دو تا استکان مثلا کثیف هست میخواد استکانه باش بشوره خوب دقت بکن میکنه این واجب نفسیه یا غیریه میگن اطلاق رو آب بیاد ما دیگه غیری هست پس بچه شما استکانم باید گرق کنه اگر غیری باشه دیگه آب نمیخواد دیگه شوش تموم شد اگر نفسی باشه باید بیارید اینا میگن اطلاق ثیغه نگو آب بیار برای شستن مرادشون از اطلاق در اینجا این قید رو نگو برای شستن استکان پس ما همهش مکنیم بر واجب نفسی حتی اگر بچه از ذر پارش شما آب رو باید بیادیم شما گفت آب بیاد ما در اینجا این توضیح داریم انصاف قدیه این دوتا اطلاق به یک معنا نیسته انصاف قدیه در بحث واجب تخیری انصافا اطلاقه نه, نه همون ادم کافی انصافش چندی طور یکی شقدر هست یعنی همین که گفت آب بیاد نگفت یادوخ این قاعده این خودش با عدم استعمال یا دوغ این واجب تعیین در اما اینکه این واجب نفسیه یا غیریه اگر نگو آب بیاد برای شستن از او در نمیاد. عدم القینه در اینجا تنها کافی نیست. نمی تونیم حکم همین که بگو آب بیاد بگیم همین که نگو برای شستن پس مرادش وجود نفسیه. انصافا نمیشه اثبات کرد. وجوب نفسی در اونجا متفقات در مقدمه در مقام بیان باشه اگر ثابت نشه در مقام بیان وجود نفسی در نمیاری البته خوب در اینا ظرافت های علمه ممکن است خب می اگر در نمیاری بچش طرف اونجا شست شما معترض بشین دیگه آب نداره نه بچش هم رفت شست آب بازی نه و با وجود نفسی از اول اشتغال ال اشتغال یعنی اخذ از فرقش اینه که آیا ما در اینجا به اصل لحظی تمسک میکنیم یا اصل ساعت که صادقیفه میگه به اصل لفظی تمسک میکنید. مگر این اصطلاح که الان جای خوبی فرمودن این به درد نفی وجوب تخیری میکنه اما این اطلاق به درد نفی وجوب غیری نمیخوره. در جرافت لحظه بحث در اثبات وجوب نفسی به مجرد عدم غیبه کافی نیست. با در مقام بیان باشه نفس غیر متونه قد مؤتفر نبشه خصوصی دیگه باشه اون وقت فکر میکنیم این وجوب نفسیه شما اگر دیگه هم مثل بده به منجرد شاکی نیست نکرد باز اثر وجوب نفسی برش باز بله اثر وجوب نفسی نه وجوب نفسی اثر وجوب نفسی که اگر بعدش هم شوس باز باز او بیاریم این اثر وجوب نفسی لكن این به خاطر فاعلی اشتغال نه به خاطر ظهور کلام نه به خاطر اساس اطلاق به خاطر اصل عملی نه به خاطر اصل ظنی وقت خودش عزم میکنه الله علیه محمد